میاد بیرون نامه ما ماشاالله بلوگ. گل کشید. ماشاالله نیاز. ماشاالله. این نامه داد. کجا جوشی؟ این پسشار بود یا مرداس؟ ما. که میشه کارگر بود. چند وقتی میشه تامین نکرد. نمیشه نخنیش. چرا چی دوباره؟ او نهار میزاشیم. معلوم بود درستی نکردش که دنبلم نمیاره. ناسنفینه هم پدرش همین یه سیامشی بوده به خاطر پول ناتورینگ. منتظر بترزن داشتم جیگر مبارزه بود نه جیگر نمیخواد که خریات میخواد یعنی امشب برنامه نداریم اصلش امشبه این همه پول دادین یارو رو برسیم او امشب هر کسی جزء باشه حق ندارون اول اول داشه من بی شب می چی بازش ده برابر تو درسته نمی خورته میده نمیفهمم چن چه اینجا من لازم نیست از تو اجازه بگیرم این نشه میرم یه جای دیگه اگه بخور خودو خلاص کنی من راهی بدون دردم حدا دارم قرارمون نمیشه نمیشه خطرناکه نمیشه من بتونم خودمو وسط آتش بشه بس زندگی با آتش بازی باشه آقا من میگم تو برو با خواهر صحبت کن اون میتونه بره رازیش کنه این چه چرت و چرت باته کرده مثل که تو درنه ازرائیل درس آورده باشی Ja. Tudtál hergetni. Így. Egy غلط کردم آقا غلط کردم آقا غلط کردم آقا بیجا کردم آقا آقا غلط کردم آقا بخوردم خدا تفسیر من نبود آقا من مهمورم به من گفتم خب منم انجام دادم، به منجرم آقا بگمچید آقا غلط کردم آقا Dansira <Sessizlik> laoudah, اون همه ریله داره همین زلی نرو فتنه‌ای که بیا خدا ذلیلشون کنه خدا ذلیلشون کنه چی خدا دکتره ورده ماردن. کیا وردنش معلوم نیست همساده ها میگن با گوتو شلوار بوده پاچو باردنه ایسای حتما تفصیل زندان بی سابونا چش ندارم بدانی که دل نوزه مردمه خانم آقا از خیر و برکت بود. من همیشه پیش خودش می رفتم اینو خودش خوب کرد خانم دخش محصومم بود نه محصوم خانم خونه نیست میگن اونم فرار کرده سر است. اونی که خوبی داده بدی هم داده بد خوبی میکنن خوبی کن اگه بدی کردن نه آدم نباد با آدم ها بد باشی باید با آدم خوبی بکنی خوبی روح و جله امیده خود خوبی هم دو جوره به طرفش توی که خوبی میکنی به طرفشونه که خوبی رو میگیره اونایی هم که خوبی میگیرن دو جورن. یه سری اونان که دوست دارن زود جواب بدن با خوبی اما یه سری ها اصلا خوبی که میگیرن اینه کرکس خمارن چشمشون بسته است چشم رو ندارن درسته آقا ما شیتیل که میگیری شیرینیه <تصفيق> وقتی شتیل میگیری وقت مسئولیت ده. یعنی وقتی شتیل گرفتی کرکسه بودی یعنی چشات بسته است بی‌چشمرویی بعدا شات باز شه بازی دردا هستن خیلی کیف داره عین درد زایما مثلی دردوم هستن درسن مثل چوب فلک مثل مکتب اما بعضی در راستن چشواز کنن خماری رو میپرونن میفهمی که چی میگن حالا حرف اینه کجا بزنی که درد کجا بزنی که طرف درد یادش بمونه مردم سهل کمخافزن <تصفيق> کیفی داره دردی که بسید یادگاریه کیفی داره دردی که قرار یه عمر همراه باشه درست ها اما؟ <تصفيق> حیف حیف که فقط بهم گفتن گفتم یه درد اگه به خودم بود سر یادانوری و و روشایی چشم رو باز شدن Tak, tak én oromicsi, tágy. Tágy. Tak, حلام. سلام سلام خست رو خسترخان گمون می کنم من رو دیر ارسا کردیم طوری نیست <تصفيق> البته جنس با تأخیر رسیدن قرارمون این بود که من در امر نقل و به دفالتی نداشته باشم این بار ضرورت هم مصدده اوقات عزتوالی و دوستان شدیم که اگر کنترل امور به دست من بود به همینم هم راضی نبودم دوستان در شرایط سخت به همدیگه کمک میکنم بشینین لطفاً من بابت موضوع دیگه اینجا هستم جناب عطاوکان رو که میشناسید، متعلقشون کردم از این به بعد محبولهی که جابجا به کنین متعلقه به ماست در زمین مشابه بلایی که توتونکی سر را آدم و باراتون آورد دیگه تکرار نمیشه دستین بخشای خودمونه حالا که تهران تشریف وردید یه سریم به باغ ما بزن <تصفيق> ما ایرانی ها رسممون امانداریه بلو مال دوزدی باشه در بغوله حمل و نقض کار شما ممتازه شما باید با ما کار کن تا ما هم بتونیم همه جوره ازتون حمایت میکنم جناب کیتان گمون کنم واضح نگفتم من با شما کار نمی کنم مطمئنم همین آقای اطابک مصطفی در نبود حمایت ما با شما برخوردی میکنه که به زودی این سراغ ما هموطنم ازیتم کنه بهتره که اجنبی حمایتم کنه اگه با من بود هیچ وقت برای آزادیم به شما زحمت نمیدادم <تصفيق> ولی به قسم ازتون تشکر سلامت باشین میگم میبارد و در اتاقتون بیارن خدا نگهت اونم ان به سزای اعمال خلاف قانونیشو میرسه. اگه شما از مأمور دولت هم یاد نکنی که و سقف بند نمیشه، آقا رئیس. اگه میشکازا برسه پیش مأمور حکومت در بود، آخون بکنه. به گوش اعلیحضرت برسه تعمد میکنه؟ خیلی خوب، اونم ان حل میشه. میخواین دوسیه تشکیل بدیم، رسیدگی بشه. آره خدا خیرتون تو طور خود نگاش کن. اوه اوه راحت، مش خب اگه میخوام شکایت بکنم من یه مهمور ویژه میفرستم محضرتون مبسوت ماجدارو نه لبه نه مطابق هر چه که دیدین باسهش نه رو بلکه هم مهاجمین پیداشن و تقاس ببینن خدا از بزرگی کمتون نکنه. ام. بسیار پس بس یادتون باشه هرچی که دیدین بی کم و که است Hallom, mi Biacho. کوری تری نمیش دفتتو منداز سلام آقا قربون قدمات آقا منت سره با گذار حسن دوتا چای دیش روه بیا بیار دفتتو بو عرضه کاسمی نداری درشو تخته کو. اینجا چرا قرد خلبتیه بوم سیاه آقا جنس نداریم این نفله مثلا مسئله چی دارن دود میکنن چند وقتیه کفکرمون خورده تای دیگه آقا آره باید به کاردون سپرد نه نادون وقت با دیار شده مردک آره باید بشند یه قد بدونی به بعد بدون اجازه من آبم نمیخوری بله هر هرکی که اومد هرکی که رفتو هرکی که برگشت خبرشو به من میده نفهمید آقا آقا ما دفعه قبل قاست فرستدیم پی بیرات خواه ولی جوابی نایمد آقا <تصفيق> یکی چی این به بغض و ببره و گوت چه شب آقا غلط کردیم آقا آقا دست به دومتون آقا ببینم یه بارو ببینم آقا دادا بگیر فقط ما چی بوده آقا خطایی نبود اشرفی چی گفتم آدمی که نسل و گوش لازم داره خس ببر آقا رحم کنید آقا آقا به جوونی اون ربودت هم به دومت آقا گفتم آبم که میخوری راپورتشو به من بده به کی؟ به شما, شما. عباره کلا من مثل قبلی ها نیستم هر شب یکی میاد دخل رو میبره زیاد و کم بشی زیر رو رو بکشی یا بفهمم گندشو بالا آوردی دستت تو میدیم آقا ما غلط کردیم؟ آقا ما چه قبل شما چه بعد شما تا الان دست بکیش نوردیم آقا اینم ما آوردیم بلشگاه میدید باشه باشه باشه باشه باشه خراب شده نمیدونم آقا یکی و بردس فردا اینجا را ادازه بگیرد آقا شما خیلی بزرگه آقا سایه تو مستدام آقا اوش چی بد میگه چیم آقا؟ یه هفته بهت فرصم میدم یه سرسابونی به اینجا بدی میخوام همچین رو بگیره اینجا که پتو تو قهوه برده شهر بشه چه صد آقا مهرداد خوا هر وقت اشواتن ال شد چکون بکویم ایلات خواه باشه بابا بابا اینجا جای شما صغیم اینجا جای شونه خواه جای شونه اپا اپا حالم خوبه دخترم نگران نباش حالم خوبه رنگ روختون نمونده آقا جو چیزی نیست یکم روزگار به ام سخت گرفت. خی بهتون اگرم سفر برید گوشه کناری سفر حالتونو خوب میکنه ولی گوش نمیکنی دیگه آقا جو مهبانو مهبانو برو خودمون زمان اومده سلام مرهانو بیا کارت دارم اون بچه داره خودش رو به کشتن میده به خاطر تو چیه چی شده اتفاقی افتاده مگه نگفته بودی که دوستش داری چیکار کرده مگه تو چنقی حراس رونی خودت رو زدیده نفهمی توقعیت از من چیه داره خودش رو به کشتن میده هیچ بگید نکنه چه میدونم بغش زن بگیرید منو ولم کنین چیو نمیتونی اصلا میفهمی چی داری میگی داره میره مسابقه با یک قلتشانی که تا حالا هیچ کی از دیر دستش زنده بیرون نیامده قبلا همه کارش معقول بود هیچ خط و خطایی نمی کرد حالا هر خطایی میکنه بنویسین پای من قبلا فرق داشت اگه فرق نداشت خودم کوچیک نمیکردم خامو بذارم اینجا دستمو جلو دراز کنم ازت گدایی کنم بار آخری که میام با روی دروغی چیزی هم کن بهش امید علکی بده از این مسابقه من سرفش کن من دروغ نمیتونم بگم افتادی سر قوز. ما چه بدیی به تو کردیم انتقام چی رو داری میگیریم انتقام نمیگیرم من رو برادر تو به درده هم نمیخوریم حرف مفت میزنی دختر اون وقتی که مهربانو تو به من به ما به برادرم مدیونی چه یا مدیونم جونمو زندگیمو چرا چیانی بزرگترین اشتباه زندگی تو میکنی خونه اون بچه به گردن توه یه روزی گریبانه تو میگیره حاکمان یه کار کرده بودی که همچی وقت مختیالی برش داشته بود که عشقی در میانه من کاری کردم نهک یا دستم برمیاد میاد میکنم هیچ کمک که هم نمیتونم بکنم اگه اتفاقی براش بیفته اگه اتفاقی براش بیافته همه این خون زندگی که براتون ساختم و خودم رو داتون خراب مثلا خود برباش حرف بزن هر کاری لازمما بکن از خودم باش حرف بزنم ولی دروغ بهش نمی خانم, خانم. ایش کرده. تا دیگه ذایه نزدن تو هم نگه خوهرتی نگاه کن منم با تو هم اگه بلایی سر مهراد بیاد کاری با تو می کنم یادم بابا با کنم در... میروخو شما ایزه برامام هم بهروز ده <تصفح> خانم بیا منو ببر همون قهوه خونه مگه تشریف نه مشکو؟ بر... بش خواهش دروق بگره گنه بهشون کردی نداشت <تصفح> این خلوص صغرابه نبود <تصفح> خونه رو سرطون <سرزم> خراب میکنم <تصفح> باید باید باید نمیرسیم در جنگ جدوار به خودشاره این ازشتا مانو دو حالت تدافی کنیم نشیسیم منتظر ببینیم حریف چه رویه پیش میگیره ما از خودمون دفاع کنیم رویه موت خودمون قراب باشه باید جماعت سرشاخت باشیم باید خودمون پیش چی می‌خوای بگی؟ شنیدم نی دام مگرد دور مسابقه رو بس. اومدم به لوت که پولاشو که می‌تون مرسنی کنه. عارفیشو می‌شناسی؟ شووری اجازه بدیم آشنا بشی. می چی می‌خوام ازت. حالا آقا، کارت نیستم استرا. زود باش می‌ذارم. منم خب زیاد دارم می‌کنی. همینقدر که برای من می‌خونند بس. مولش آب و آکای شام. شیشو پا. تو کار ما دو دوزنه نداری. بدون چی. کج که... بری سرت می رو می‌برم می‌ذارم رو نافت. اعتراضی؟ majd az, hogy te kijelent. Szeretni burád, a robsona. او او زمین او او او او دلش خوش باشه او او او او او او او او او یا حرف کش آمد به چشم بده رو می‌کنیدار و یه دیگر رو می‌گوید خودتونم که سلامه دختر از من می‌شتبی با آبروی پدرت بازی نکن یه نه که بگی ولی محکم بگی قربونت برم فریده جان آخه این چه حرفیه؟ خود قربون صداقه به دونبانه من نبهن ماخر نمیشه این بحضا زندگی مونه وقر قامت میگه دلوق منو اینکه داداشم میره سر سفره مونا اجار کنی این رفیق و گلستان فروخونم خط تلفشون کشته که چنین میکنم و چران میکنم داداشم میگه کارش چیکار کنیم به آقا میگم چرا مغازتو دو ساعت ال میکنی برمیگرده میگه روزی دست خوند آخه این روزی موه ای این قده تو به این روزگار پیش میگم یه خورده بول دردیه مثلا به زخم زندگی بود برمیگرده میگه این دنیا هر چی آدم کولهوارش سوب و سر بهتره اون دنیا شجاوابش شادتره احترام شما برای من واجبه. همین آقا جونم هم بهم میاد در گل کم‌تر بد نگم ولی اگه اینو نگم سر دلم میمونه. فروخ و تا قبل از این ماجرا رفیق دوست من نبودن. و خانم اون من از دست آبجی خانوم ناراحت اصلا این بنده خدا ته دلش هیچ چیز وا که فاک. اصلا ماو جهادم. اصلا شما وجدان خودت برمی‌داری که آبجی اتفاقی بر ما بیافت، من چیکار کردم؟ چییشو ما حرف بزنی که من مقصرام. او شاداده های کون گدیش می‌خواد بکنه. و سراغشیم دلمو خوتوخ کنن. اتفاقا این دفعه فقط به خاطر تو این کار میکنه. خب نکنه. تو به چه میذتدی من بهش یه چی نگفته؟ نه ویارپو. یه باری، یه جایی، یه کاری کردی که به دل ماست. اما دل ماست یه دل ماست و دیگه با سازی تو گوشت ها؟ خاک بست داری من کنیم بچه دیم جوانیم تنه عمرم رو گوشم تو تو یه دونه لش داداشو بزرگ کنم من بچه هست و بزرگترم عمره یه پشه. از خود خودم زدم کدم تو خیکتو از تو خاک رو کشیدم بیرون و تو عرش فرش نه نداشتی؟ بابا داشتی؟ اگه من یه دونه خواهر قمخوار دل سزن نبودم تنها زی درست نوچه های لاتای زیر گذارم ای خاک برسرد کنم تو نیش کشیده بزش بیزادی حیف که من مرد میزم ای مرد باید تو وقتی زنده ده از تو دهنش آچیش بلشه وقتی میمیره تو گورش تو چی کار کردی؟ بی بخار بخارت یه نقم صاف نمی کنه. تن لشه خیز قرده پشو بریم کجا؟ هر جا که این پسره هست میخوام باش حرف بزنم Tools for you, my family, دیدی به و خانوم آمدی خواهی تو به ساله بکشی که دل سنگ من نرم شه خوش رو خوبه اومدی منو منطرف کنی مرغ نیستی که پاتو ببندم خونه همسایه نری میشهفر تندتی توسینت داری؟ این کارت انتقام گرفتن از منه خودتیه خانوادت حالا دست کم گرفتی سکار خاانمون این هم یه مسابقه هست مثل مسابق های دیگه این یکی فوق طاقت توه خودت هم میدونی علامه به تو وارد بشه وجدان تو از سرافت. خیالات راحت بشه. تو پیش وجدانت شرمنده و سربزی نیستی. هیچ ماجرای داخلی به تو نداره. یادته میگافتی تو اگر بخوای همه دیونه بازی هارو میذارم کنار. حالا ازت میخوام که بذاریش کنار پاره شده خیلی من نگهش میخشته اینا رو تو برای من گرفته بودی اون موقع فکر نمی کردی خانم خانوما بشی و صد تحضیب پسرهای سرخاب مال دست ما کشی کفشت بشم کفشای من یادت تو تقصیده بودی بری فرنگ با هم حرف زدی راضیت کردم از همون موقع زندگی مو با خیالات و با خیالاتو بی خود پر از عشق تو کردم من برای تو... خیال می‌کردم زندگی من و تو اسباب حسرت و قبطه‌ای دیگرون میشه. خبر نداشتم یه جغد شومی که لب بوم هم نشسته حیف این سیبه سرخ که دست اون مردی که دعاتی افتاده. من هنوستش تصمیمی نگرفتم یعنی بهش جوابی نده دی؟ میگن نخواستن زیاد از فرت خواستنه خانواده موافق نیستن خودت چی؟ بگو که نمیخوایم وصلت شم سر بگیره نمیدونم منو نگاه کن منو نگاه کنه او که نمیخوای تو بخوای بهشون جواب رد میدم دوستم داری یه سر سوزن که دوست داری؟ زنم میشی؟ شاید بگو بگو زنم میشی؟ توی نقشه بذار هر کجور دنیا خواستیم از زندگی کنیم با من زندگی کن یه <تزق> خونه بزرگ میسازیم توی جنگل آروم دو سه تو بسه قدر دانیم قدم دروهر ما میدون <تزق> <تزق> سه همه دروغ‌های قشنگ که به من گفتی است پدر A na na na